اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا و, نبی و آله الطاهرین خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم روز بخیر عرض میکنیم انشاالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و الله به لطف الهی از هر گونه گزندی هم به دور مانید ما در خدمت شما بودیم در تقسیم استاره به مرشهه و مجرده و مطلقه مثالها رو خوندیم نموزج رو هم دو تاش رو برای شما حل کردم و ست های اون باقی موند که امروز در خدمت شما هستیم بعد انشاءالله آخرین بحث استعاره رو برای شما مطرح میکنیم با توجه به توصیهی که من کردم که تشبیه تمثیلی رو بخانید الله تعالی خانده و استعاره تمثیلیه به سرعت فهمیده میشه و خیلی هم راحت خواهد بود مثال دوم از نموزش فا این یحلک فا کل عمود قومن من الدنیا اله هلکن یسیرو شاعر میگه مضمون شعر اینه تلک یهلکو یعنی ماته میگه فرئن یهلک یعنی اگر معلوم بشه که شما رئیس ما رو کشته اید فرئن یهلک یعنی اینجا هلکه یعنی ثبت هلاکو یعنی ان ثبت هلاکو اگر مردن این رئیس ما ثابت شه معلوم شه که شما رئیس ما را کشته اید فلا بعث علی ما هیچ مشکلی نداریم فلا نحزن قصه نمیخوریم چرا این فکل عمود قومن این جای اون فلا نحزن نشسته محضون نخواهیم شد دلمون نمی سوزه. چرا؟ در واقع میگن سبب اومده جای مسبب نشسته این درسته آن در شکل جزای شرط جمله اسمیه فا گرفته ولی در واقع این جای جزا نشسته و شده جزا پس اگه ثابت بشه که رئیس ما از دنیا رفته و شما کشتینش ما هیچ غم و غصه ای نداریم دلمون نمی سوزه. چرا؟ و کلو عمود قومن زیرا هر ستون قومی منظور رئیسی زیرا هر رئیسی یسی رو منر دنیا اله هر رئیسی حرکت میکنه از این دنیا به سوی مرک هر کسی یه روزی میمیره دلمون نمیسوزه چرا؟ چون همه میمیرند چون؟ هر رئیس قومی یک روزی از این دنیا به سوی حلاکت و آخرت خواهد رفت و کل عمود قوم من الدنیا دنیا اله هلکن یسیرون از دنیا به سوی مرگ حرکت خواهد کل عمود قومن مبتداست یسیرو خبرشه من دنیا اله هلکن هم درست شد متعلق است به یسیرو اما نگاه کنید شاهد کجاست میگه فکلو عمود قومن عمود ستونه ستون که نمی میره بگه هر ستون قومی از دنیا به سوی مرگ حرکت میکنه ستون که مرگ معنا نداره پس اینجا منظوره از ستون رئیسه رئیس قوم یعنی هر رئیس قومی حرکت میکنه رئیس رو تشبیه کرده به ستون عمود خب بچه شبه یا جامعه چیه؟ اینکه هر دوتا تحمل بار میکنن ستون سقف رو تحمل میکنه که روشه قوم هم رئیس تحملشون میکنه اونها رو به قول خودمون اداره این قوم رودوش رئیسشون هستن چطور ستون سقفو نگه میداره رئیس هم قومو نگه میداره تشبیه کرد، درست شد؟ بعد رئیس حسب شده درست شد؟ رئیس حسب شده عمود نشسته جاش خب قرینه چیه؟ قرینه اینه که میگه فعید یهلک اگر معلوم شه که مرد مردن مردن قرینه است که منظور از عمود بگید رئیسه چون عمود حلاکت نداره مردن نداره مشخص شد میگه اگه معلوم شه مرده پس هر ستون قومی ستون قوم که مردن معنا نداره براش پس یهلک قرین است بر این که منظور از عمود رئیسه خب حالا این تا اینجا تا عمود قومن استعاره تموم شد استعارهشن استعاره مصرح است دیگه عمودم اسمه میشه اصلیه بعد این من الدنیا اله هلک یسیر از دنیا به سوی مرگ حرکت میکنه آه، به سوی مرگ روانه است این ملائم با رئیسه یا ملائم با ستونه ملائم با رئیسه ملائم با مشبهه پس بنابراین میشه استعاره مسرحه اصلیه مجرده بگی رئیس تشبیح و عمود جامع به دوش کشیدن بار تحمل رو داشتن رئیس تشبیه به ستون عمود جامع و چشمه به دوش کشیدن و تحمل کرد رئیس حسب عمود جاش قرینه یهلک چون عمود اسم تسمیه استعاره ی اصلی. بعد مند دنیا الهول یسیر که بعد از استعاره آمده ملائمه با لیس، پس میشه استعاره مسرحه یا تصریحیه اصلیه و مجرده نگاه کنید فی عمود استعارتون تسریحیتون مسرحتون اصلیتون شب به هر رئیس القومه بالعمود به جامع علا کلن و القرینت و یحلک و فی الاهولیکن یسیر تجرید در الاهولیکن یسیر یعنی من الدنیا الاهولیکن یسیر تجرید خب یک رو خوندیم دو رو خوندیم سر هم خوندیم حالا میایم سر چهار میگه و لیلتن این روبه لیلتن واب واب است و چه بسا شبی مرزت من کل ناهیتن که این شب مریض بود از هر جهت خب شب مریزش به چیه یعنی تاریک بود باران می‌آمد آن سرد بود اینا مریضی های شب دیگه میگه و چه شبی که ناباب بود نامولایم بود از هر طرفی یعنی سرد بود باران می‌آمد تاریک بود هیچ ماه و نبود و لیلت مرضت من کل ناحیت فما او چون این شب از هیچ جهتی درش نقطه مثبت نبود فما او لها نجم و غمر پس هیچ درخشش نداشت برای این شب ستاره ای یا ماهی یعنی هیچ ماه و ستاره تو آسمان هیچ نوری برای این شب نبود فما او بنابراین هیچ درخششی نداشت ستاره ای یا ماه هیچ تاریک تاریک سرد بود بارونی بود تاریک تاریک بود شاهد سر و لیلت مرزت مرزت یه زمیر هی توشه برمیگرده به لیله شب که مریض نمیشه باید بگه و چه بسا شبی که تاریک بود از هر جهت اگه گفته بود ولیلت این از لمت از لمت ظلمانی بود از هر هیچ چیزی توی رو بیار این مطلب نبود درست از لمت مشبه مرزت مشبه هم به از لمت هست مرزت جاش نشست قرینه چیه ولیلتن نم قرینه و مرضت مرزت من کل ناهیت و چه شبی که تاریک بود از هر جهت. درست شد؟ این شب تاریک بود از هر جهت. خب تا اینجا استاره تموم شد بعد استاره چون در فعلم هست پس میشه طبعیه چون مشبه به مرزت جای مشبه از لمت نشسته میشه مسرحه درست شد؟ مسرحه طبعیه و لایلتن هم قرینش این تا اینجاش که مشخص هیچ چیز خاصی ندید بعد میگه فما یوزی اولها نجمون ولا قمر نمی درخشید برای این شب هیچ ستاره و ماهی این یوزی اولها نجمون ولا قمر ملائم با کدومه؟ ملایم با ازلمت تاریک بود یا ملائمه با مرزت مریض بود ملائمه با تاریکی یا مریضی قطعا ملائمه با ازلمت مریضی ربطی به ستاره و ماه نداره تاریکی ربط داره پس ملائمه با مشبه چون ملائمه با مشبه میشه چی چی؟ مجرده پس میشه استعاره مسرحه تبعیه و مجرده استعاره مسرحه طبعیه و مجدد بخونم بعد یه نکتهی توی شعر هست دیگه میگه فی مرضت استعارتون تبعیت شب بهت از ظلمتون بهتر بود بگه ال ازلامو ازلام یعنی تاریک شدن شوب بهت ال ازلامو بلمرز خب این تو مرحله اسم میشه مستره تو ذهنه و جامعه خفا و مظاهر نشاد پنهان بودنه تدیده های فعالیت خب معلومه هم در تاریکی هست هم در مریضی ولی تو مریضی حسی آدم میبنم مریض ها نداره دکن با خود سمه از این مرحله میاد تو مرحله بیرون که تو فعله سمه اشتو قمن المرز مرزت درست شد به از ازلمت به از ازلمت بابه افعال فل اصدارت و تصریحیتون طبعیتون ما فی مایزیه الها نجمون و لا تجرید این مایزیه الها نجمون و لا قمر با مشبه ازلمت پس تجرید یه نکته ببینید یه نکته میخوام تو کار ترجمه بهتون یاد بدم یه بحث دیگری یعنی اصلا رابطه به این موضوع ما اگر می‌خوایم یکی رو تعریف مثبت کنیم میگیم فلانی دیپلم رو میتونه درس بده دبیرستان میتونه درس بده. لیسانس هم میتونه درس بده. فوق لیسانس هم میتونه درس بده. دکتر هم میتونه درس بده. تو مثبت از پایین میریم بالا. فلانی پنجاه کیلو رو بلند می‌کنه. 80 هم بلند می‌کنه. 100 بلند می‌کنه. اینطوری تو مثبت میریم بالا. تو منفی تعریف که می‌کنیم عکسه. بگیم فلانی فوق لیسانس رو نمیتونه درس بده لیسانس هم نمیتونه هیچ دبیرستان هم نمیتونه یا فلانی 100 کیلو رو که نمیتونه برداره هیچ بردرا کیلو هم برداره سی کیلو هم نمیتونه اینطوری من اینجا فمایوزی اولها نجمون ولا غمر منفیه اما اول نجم رو میگه بعد قمر رو قانونا باید بگه که نمی درخشد در این شب هیچ ماهی و هیچ ای ماه که نداره این شب چی؟ ستاره هم ندارد. درست شد؟ ولی میگه هی نمیدرخشد ای و ماهی اول ستاره با ماه در که بعد اول تو منفی ماهو بگه بعد ستاره قایده شه، قایده به زبانی ماست چرا این فقط به خاطر قافیه است که قافیه شعرش را بوده نزا تو ترجمه اگر یه همچین چیزی گیر اومد باید ترجمه کنیم پس نمی در این شب هیچ ماه و ستاره ای. هیچ ماه و ستاره ای. یعنی در واقع این به خاطر صنعت لفظی جا به جا شده خب تمام شد بریم سر آخری سقا الله و حیانا بك الله جمله دعاست سقا الله یعنی خدا سیرابت کنه یعنی به اصطلاح مثل این که ما تو فارسی میگیم خدا خیرت بده باقی جواد چون معتقد بودند که اگر خداوند باران رحمت ببارد بر کسی او رشد و, و نمافت میکنه خدا سیرابت کنه انگار میگه تشنه از دنیا نری سقاک لا یعنی خدا سیرابت کنه یعنی خدا حفظت کنه خدا نگهت داره لال از دنیا نری تشنه از دنیا نری سقاک لا و حیانا به که و خدا ما رو هم حیانا بکی بکه و خدا ما رو هم تهیت بده خوشحال کنه زنده بدارد به تو به واسطی این سقاکه و حیانا دوتا نزاع کردن سر الله باب تنازوه الله عمل میکنه درش حیانا و در سقاکه زمیر و برمیگرده برمیگره برنا که باب تنازع باشه پس ترجمهش میشه چی؟ حیانا به کلا یعنی خدا ما رو هم به توفیلی وجود تو زنده بدارد خدا تو رو سیراب کنه تو رو زنده بدارد و ما را هم به توفیلی وجود تو زنده نگهدارد. خدا به تو خیر بده و به واسطه تو ما را هم خیر دهاد شد؟ سقاکه به اون خانم میگه و حیانا بکلاهو خود تا اینجا بعد نگاه کنید این محبوبه او معشوقه او داخل هودج بوده زنان رو تو هودج میشوندن هودج رو روی شتور بعد هودج ها برای این بود که زن اگه خواب رفتن نیفتن اگر به قول خودمون گرد و خاک هست برشون ننشینه و اگر آفتاب میاد اینها را آزار اذیت نده اینها محفوظ باشن. حودش مال بچه با به قول خودمون زنان بود. یعنی حریم اونها بود. از چشم محفوظ بود. اینها رو هودج ها رو جعبه روی شطب می زناتوش بود. این هم, هم تو اون بوده بقیه زنان قبیله هم توی شودش های دیگه داشتن می میگه انما علل ایس ایس جمع عیسا مثل بیز بیز جمع بیزا صفت مشبه هست همانا بر شتران ناغه ها الفلام داره یعنی بر این شطران همانا هست بل این شتوران درست شد روی این شتوران هست خب چی هست؟ نورن شکوفه ها نور یعنی شکوفه ول خدور خدور جمع خدره یعنی هودج و این هودج ها کمائم و هود هودن به نور کمائم جمع کمامه است کمامه یعنی کاسبرگ غلاف زیر گل کاسبرگی که هست که گل و توش نگه میداره اونو بهش میگن کمامه بهشو کاسبرگ گل میگه روی این شتورها شکوفه است و این ها مثل بگید کاسبرگ های اونها هستند تهمیدی چطور شد؟ یعنی انگار که این شطرها پایه گلند یعنی اینطوری تصور داده بعد این حودج ها مثل اون کاسبرگه که قنچه رو تو خودش نگه داشته این زنان زیباروی هم مثل اون گنچه که توی کاسبرگه خود میگه همانا بر روی این شطرها نور است شکوفه و خب ما میفهمیم روی شتور که شکوفه نیست روی شتورها چیه داشه شتورات نشون میداده علل ایس روی این شتورها نگاه میکنی میبینی روی این زنان هستند اون زنان قبیله یعنی علل ایس نساون کنوره روی این شتورها زنانی هستند مثل شکوفه زیبا خوشنگ خوشبو بعد میگه والخدور و این حودش ها کمایمه مثل کاسبرگ هست این ولقودور و کمایمه تشبیه بلیغه و این کاسبرگ ها که شما این حودش ها که شما میبینید مثل کاسبرگی هستش که این شکوفه ها رو تو خودش گرفت خب تصویر داد به ما دیدیم دیگه درست شد زنان رو تشبیه کرد به شکوفه ها و حودش ها رو تشبیه کرد به کاسبرگ ها. ولی ولی خدور و کمائمه مشبه و مشبه و به هست میشه تشبیه بلیق ولی در مورد نور مشبه حذف شده زنان مشبه به نور شکوفه جاش نشسته این الان استعاره مسره است از نوعه بگید اصلیه چرا چون نور بگید اسم جامد قرینش علد ایزه در اینش علل ایسه بر روی این شوتران حالا بعد از اینکه این, این استعاره تموم شد علل ایسه نوران خدور یعنی حودش ها این حودش ها با زنان ملاعمت داره یا با شکوفه با زنان مشبه این اگه تنها بود میشد تجرید کمائم کاسبرگ ها این کاسبرگ ها با زنان سازگاری داره یا شکوفا با شکوفا؟ هم ملائم با مشبه هست خدور هم ملائم با مشبه هم به هست کاسبرگ ها چون ملائم با هر دوتا هست میشه استاره مطلقه اما از نوع دو نه از نوع یک درست شد؟ توضیح زنان تشبیه شدن به نور زنان حذف شدند نور شکوفه به جاش آباد چه استعاره مصدری مشبہ به جای می‌شود چون نور اسم جامده مشعقی قرینه علل ایست بر روی این شتوران و معلوم روی شطر زن هست شکوفه نیست جامع چیه جامع معلوم زیبایی زن رو به شکوفه تشبیه کرده قرشه تشبیه کرده یعنی زیبا خدور کمائمه خدور ملائمه با زنانه کمائم جمع کمامه یعنی کاسبر ملائمه با نوره چون ملائمه با مشبه و مشبه به هر دو در کلام هست میشه استاره مطلقه مسرحه اصلیه مطلقه اما از نوع دو که تو هاشیه گفته بود که همین بالا گفت من نو ال این مثل هم. نگاه کنید میگه الخطابو تو آشیه پایین کتاب تموم شد الخطابو فی سواکل محبوبته يدعو لها ها به, سغیا. به اون دعا کرده او رو به اینکه سیراب بشه و ان یحیا بها کما یحیی الناس بالاظهار اینکه تهیت داده بشه به این خانوم همونطور که مردم تهیت پیدا میکنند به قول خودمون با ازهار و شکوفا این دیگه بیرد گفته بلکه اون بالا اینطوری نوشته یه چیزی بلکه منظورش اینه که خدا تو رو خیرت بده به واسطه تو ما رو هم خیر دهد ما رو هم تعیب خدا تو رو زنده نگهد انگار گفته حیاکه و حیانا بکلا خدا به تو عمر بده به واسطه تو به ما هم اون بده ما وابسته ای به تو است ولی ایس ال ابل والکمائم جمع کمامر و هی غلاف و زهره کاسبرگ شکوفه حالا بریم توی متن ببینی چی میگه میگه انورو از زهرو شکوفه وبل ابی ازمن یا شکوفه سفید سهردس کوه هیچ مشکل نداره نور شکوفه مطلق گفته میشه شکوفه سفید رو هم نور میگن که اینجا میتونه چون زنان هستن و داخل حودت چنین در این ول مرادو ان هنها منظور زنانیه که سوار حودت جده ول جامع الهس جامع زیباییه خب در شکوفه زیبایی دیگه مشهور. ول استعارت و تسریحیتون اصلیتون چون نور اسم جامعه و فی ذکر الخدور تجرید و فی ذکر کمائم ترشید ولی استعاره مطلقتون من نوع استانی مطلق است از نوع دفعه تمام شد دیگه خیلی زیاد که این رابطه من صحبت کردم بیان کردم بریم انشاالله سر استعاره تمثیلیه خب، پس استعاره تمثیلیه رو داریم شروع میکنیم حواستون و چند ما در تشبیه تمثیلی خدمت شما عرض کردیم که تشبیهی که مشبه آن هیئت است که اوقات تعبیر به صورت اوقات تعبیر به مثل اوقات تعبیر به حال هم میکرد تشبیهی که مشبه آن حیعت و صورت است و مشبهان به آن هم هیئت و صورت است و وجه شبه حیعت و صورتی است که از اجزاء هیئت مشبه و مشبهان به به دست می آید و این وجه شبه همیشه محذوف یه می شود توضیح دادیم. کس مشبه حیعت مشبه هم به هیئت و چشبه هیئتی که از اجزاء این دوتا به دست میاد و محسوف است معلوم شد مثل مثل حملوا همه ثم سملم یحملوها ک مثل الحمار یحملو عسغار اونجا مثال زنی. صورت و هیئت کسانی که رفتند و علم یاد گرفتند و یهودیت رو آموختند ولی عمل نکردند مثل الاقی است که کتبی چند بر روی خود داره اما اطلاع از اونها نداره حرکت میکنه دیگران شاید بهره ببرند ولی چون خودش نمیفهمه در وادی زلالت از دنیا میره مثل که گفتیم یعنی خوب خب تمثیلی رو مثال متعدد زدیم خلاصش رو هم من الان گفتم الان یه مثال میزنم برای تشبیه تبصیلی فرض کنید من اینطور بگم این طور گوش گوش هشنگ توجه کنید من بگم یه نفری بلند شده توی کلاس توی کلاس خدای نکرده یک شخصی که پیش ما درس خونده و با قول خودمون احترامش رو داشتیم سر کلاس بلند شده بیادوی کرد. من به او اینطور میگم. میگم مسئله تو که پیش ما درس خوندی و از ما بهره بردی و ما به تو لطف کردیم. و تو چیز یاد گرفتی و شخصیت پیدا کردی و بعد به ما ادبی کردی مثل تو یعنی شعن و موقعیت تو مثل مثل شن و موقعیت کسی است که نمک کسی را خورد و نمکدان او رو شکست یعنی یه کسی میهمان کسی شد وضای او رو خورد نمک او رو خورد ولی نمکدان او رو شکست خب ببین الان وشبه هست شده دیگه وشبه از اجزای هیئت مشبه و مشبه هم به, به دست میاد یعنی سود بردن و بهره بردن و سپس ناسپاسی کردن و لگد به نعمت زدن و کفران کردن اینها از هیئت مشبه و مشبه این تشبیه تمثیلی. تشبیه تمثیلی. من توی کلاس به این شخص گفتم که تو که پیش ما درس خوندی و بهره بردی و ما برا تو زحمت کشیدیم و تو باسواد شدی و حالا بیادبی می کنی مثل کسی هستی که نمک کسی رو خورد و نمکتون رو تشبیه تمثیلی. برد شو. نقطه سرخت چنانچه سر سرستاره تمثیلیه چنانچه در تشبیه تمثیلی به قرینه حالیه ببینید به قرینه حالیه هیئت مشبه حذف کردد و هیئت مشبهم هم به فقط ذکر شود استعاره تمثیلی به دست می آید استعاره تمثیلی به دست می آید یعنی همین مثال تشبیه تمثیلی رو دیدید من زدم که تو با این کارهایی که کردی مثل کسی هستی که نمک و خورد و نمکتون رو شکست همین مثال رو اینطور فرض کنید من سر کلاس هستم یه نفری بلند میشه بیعدبی میکنی و شما فرینه حالیه دارید بینید دیگه من برمیگردم میگم نمک خوردی و نمکدان رو شکستی همین نمک خوردی و نمکتان رو شکستی همه شما از این چی میفهمید همون تشبیه تمثیریه رو میفهمید ولی هیش کسی یا خود اون نمیفهمه که بیده آه کدوم نمک کجا من نمک تو رو خوردم من نمک تو تو شکستم اگر اصلا نمک تو شکستم قیمتش چقدر بگو بده یا تو اصلا ول نمی فهمی تو گرفتی چی شد پس در تشبیه تمثیلی اگر هیئت مشبه هزف شد و حیعت هم به با قرینه حالیه به جای آن نشست استاره تمثیلیه تشکیل میشه استاره تمثیلی تشکیل میشه و استاره تمثیلیه مبالغه آن استاره تمثیلیه مبالغه آن بیشتر از تشبیه تمثیلی است. تشبیه تمثیلی وضوح داره یعنی کاملا توضیح داد، تشبیه تمثیلی استاره تمثیلیه اون تشبیه تمثیلی که هست چی چی مبالغه میشه برای مبالغه آورده شده یعنی اگه به یه نفر بگیم تو که درس پیش ما خوندی و بیادبی الان داری میکنی و شکر نعمت نکردی مثل کسی هستی که نمک خورد و نمکتون رو شکست داریم توضیح میدیم تو کی هستی اگر بلند شد سر کلاس این کاری کرد من همه گفتم تو نمک خوردی و نمکتون رو شکستی اینجا همون معنا منظورمه ولی دارم خیلی سفت مبالغه آمیز به او بیان میکنم که تو به سپاسی کافر و کفران کننده نعمت هستی این تا اینجا مطلب تقریبا متوجه شد یاد بگیرید یاد بگیرید یک تفسیر اول هر هر زرب المثلی در هر زبانی که به کار می هر زرب المثلی در هر زبانی به کار می رود استاره تمثیلی است ضرب مسئ ها گوش گفتشت اون تموم شد اون هر ضرب المثلی در هر زبانی به کار میره ستاره تمثیل هست درست شد ببینید ضررب ها یه مذرب دارند درست شد و یه مورد موردشون بار اولی بوده که این ضرب ئله گفته شد بار اول کسی رفته خونه کسی نمک او رو خورده و نمک نمکنونش رو شکسته اون آقا هم برگشته بهش کفته بابا تو, چ... تو دیگه کی هستی؟ نمک خوردی و نمک تو نمار شکستی؟ خب اون حقیقت بوده اون بار اولش ضربال مثل در مورد هر کسی که هست یه نفر این نشسته بوده داشته تو هونگ آب میکوبیده تق تق تق, تق. نگه کفته بابا آب در هاون میکوبی؟ یعنی کار بیفایده میکنی؟ خب این حقیقت. اون بار اول گفته بعد این چون کلام قشنگ بوده. این را بعدن گرفتن تو موارد مشابه به کار می‌برند تو موارد مشابه میشه مزرب مذرب. مذرب مزربش می زرد میشه ذرب المسل میگن زده میشه این ذرب المسل کجا زده میشه یعنی مرحله دوم یعنی استعاره تمثیلی این که میگن مثلا این ذرب مثل کجا به کار میره چون مثلا مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه این ضربون مثل کجا به کار میره؟ یه نفر برمیگرده میگه جایی که مثلا احترام به پدر و مادرش باید باید, باید این احترام به پدر و مادر کردن چه ربطی داره به این زدن. یعنی چی؟ یعنی این مورد احترام کردن نمیتونه مشبه این واقعه بشه فرشو. باید بیایم این رو یعنی میخواییم بگیم این جایی به کار میده که یکی. جایی ضرر کرده دیگه از ضرر کردن میترسه همه جا دست به تو حرکت میکنه. یا این خوبه این خوبه این موردشه این ضربالمثل مثل اینجا میاد اینکه میگن این ضربالمثل کجا زده میشه؟ این کجاش یع یعنی هیات مشببه؟ هیات مشببه که حذف میشه اون حییت مشببه که حذف میشه و این ضر جاش میذاریم کجاست؟ پس اینکه شما توی زبان های مختلف میبینید مردم به زربلمسل اینقدر اهمیت میدن و زربلمسل ها تو زبان ها میچرخه و مردم بهش علاقه دارن حتی کتاب ها در موردون نوشته شده واسقاته چیه؟ واسقاته اینکه از اصداره تمثیلی است. هیئت مشبه هست میشه هیئت مشبه ها به بجاش میشینه قصد مبالغام هست آه؟ یعنی کلام مختصر مبالغامیست و خوب و قشنگ و تشبیه به همین دلیل زرب المثل ها تو زبان ها می چک. پس اینی هم که میگن این ذرب المثل کجا به کار میره این کجا یعنی چی؟ یعنی هیئت مشبهش چی میتونه باشه؟ درست شد؟ یعنی یعنی هیئت مشبه محذوفش رو ما چی میتونیم قرار بدیم؟ میشه اسلاری تمثیلی پس هر ضرب المثلی یه مورد داره اون مورد اولیش که به کار رفته حقیقت بوده بعدا که ما در موارد دیگر به خاطر مشابهت به کار میبریم میشه استعاره بگید تمثیلی ما ارز کردیم هر ضرب المثلی استعاره تمثیلی است. هر ضرب المثلی که به کار میرود استعاره تمثیلی است. خب اینو یاد گرفت اما اما آیا هر هر هر استعاره تمثیلی زرب المثل نه نه هر استعاره تمثیلی زرب المثل نیست درست شده؟ مثلا فرض کنید فرض کنید یک کسی به من توهین میکنه و ناشکری میکنه من برمی گردم میگم با دست خودش داره خونه خودش خراب میکنه با دست خودش خونه خودش خراب میکنه زربان مسل که نیست که درست شد یا نه اگه می مثلا تیشه بریشه خودش می اون زربان مسله خب این با دست خودش داره خونه خودش خراب میکنه خب این که زربان مسلی ولی اومد من گفتم اینکه داره به من بیعدبی میکنه و لطف من رو نادیده میگیره من پوستشو میکنم مثل کسی که با دست خودش داره خونه خودشو خراب میکنه خب پس بنابراین یاد بگیریم هر زرب المثلی استعاره تمثیلیه هست اما هر استعاره تمثیلیهی بگید زرب المثل نیست پس استعاره تمثیلی عبارت است از تشبیه تمثیلی که به قرینه حالیه هیئت مشبه حذف شده و هیئت مشبهه به, به جای آن آورده شده است به قصد مبالقه هر ضربالمثلی که به کار میره استاره تمثیلی است ولی ولی هر استعار تمثیلی یه ذرب نیست ممکنه که ذرب المثل ناشت. این نکته یه نکته دیگه هم بگم از آنجایی که از آنجایی که ما هیئت مشبه هم میبریم برای مشبه هم به استفاده میکنیم از آنجایی که ما هیئت مشبه هم میبریم برای مشبه هم به استفاده میکنیم درست شد یا نه؟ هیچ وقت هیچ وقت حق نداریم در هیئت مشبه هم به دخت و تصرف کنیم یعنی حق نداریم اون زرب المثل یا اون هیئتی که هست یه ذره کمشمازه زرب المثل رو تغییر بدیم درست شد یا نه؟ چرا؟ چون ما هیئت مشبه هم به و میبریم میذاریم برای مشبه ما حق نداریم برای اینکه به قول خودمون مطابقت سازی کنیم مثلا بیا تغییر بدیم مثلا بگیم که این نمک و خوردی و نمکتون دوشین کسی ما قدیم بوده که نمک خیلی هارزش داشت اون کمیاب بود حالا نمک ارزش نداره که یک کیسهش رو میدن مثلا دو سال تو. بگییم تو ما رو خوردی و سعفران دان ما رو شکستیم. نه نه نه نه نه سر ای نمیتونید توش تصکن. حتی اگه اون ضررب مثل برای مثلا معنسه، درست شد یعنی شما الان اونو دارید برای مذکر به کار میبرید؟ درست شد؟ باز هم نمیتونید چون هیئت به هیئت تشویق میشه. شما نمیتونید توی حیعت مشبهان به دخل و تصرف کنید. این همون چیزی که توی فارسی بهش میگن در مسل مناقشه نیست. یعنی یه نفر میگیم آقا تو مثل گاب نهمنشیر هستی. یه نفری هستش ما ما خوبی میکنه خوبی میکنه خوبی میکنه, خوبی میکنه. من یه دنم تقی میزنه تو سرمون یا آبرومونه میبره یا غیرو ها میگه ما مثل گاو نومن شیر هستیم حالا یه نفر به آ تشبیه کردی رو به گاو گاو گفتی فلان گفتی شیر گفتی این نیست در مثل منابشه نیست یعنی چی یعنی ما هیئت مشبههون به آوردیم گذاشتیم برای مشابه نه ز هیچ تغییر و تحولی در اون هیئت مشبه هم بهی که ضرب المسل و آورده میشه میذاریم جای مشبه نمیدهیم. غلط هست. اصلا و ابدا قابلیت این که ما در اون و تصرف کنیم نیست. عیناً هیئت مشبه هم به برای مشبه استفاده میکنیم. من تمام موارد رو گفتم. نگاه کنید به قاعده درست. میگه علا استعارت و تمثیلیت و ترکی بود. یعنی هیئت تود. یعنی صورتون یعنی کلامون یه ترکیبیه که غیر استعمال شده در غیر ما این کلام اومده ازش یه معنای دیگه درسته نگیم نمک و خوردی و نمکتون رو شکستی یعنی الان بردی بحث نمک و نمکتون نیست بحث سود بردن او از ماست و بیعدبی کردنش این اومده این کلام استفاده شده در غیر موضوع لر خودش لحلاغت المشابه حال او رو تشبیل کردیم به این حالی که حیعت مشبهان به لعلاوت مشابهان ما قرینه مانه با وجود یه ای که مانه هست من اراده معناه یه قرینه هست که مانع میشه از اینکه که معنای حقیقی اراده بشه مانع میشه از اینکه که اراده بشه معنای حقیقیش که نمک خوردن و نمک دوشکست ما میبینیم الان تو کلاسش بی احترامی میکرد اصلا نمک و نمکتونی نبود قرینه بان گفتم حالی است این قرینه اجازه نمیده که این محس باشد درست شد؟ ته ته من قرینه مانعت من ارادات معناه و اصلی با وجود قرینه که مانع از اراده معنای اصلیش. شد بعد گفتیم که هر زرب المثلی استاره تمثیلی است در هر زبانی و به همین دلیل زرب المثل خاقیلی ارزشمند شده ولی هر استعاره تمثیلی یه ضرب المثل نیست هر استعاره تمثیلی یه ضرب المثل نیست درست شو. این تا اینجای مطلب رو شما کامل دیدید یک یکی دو دقیقه نسبت به آنچه که من گفتم فکر کنید تا من یه چیزی رو بیارم دیدیم که درس نسبتا راحت بود شما می قشنگ این مطلب رو ببینید نگاه کنید سه تا مثال زده دو تا هم نمونه برده البته من یک از تمارینش رو هم حل خواهم کرد که انشالله به شما کمک کنه حالا نگاه کن اول اصلا نموزش. برای تمرین و حل کرده دیگه بلدید شما کنید میگم این امثال این عرب از ضرب المثل های عربه چون ضرب المثل استعاره تمثیلیه خیلی زیاد استفاده میشه زرب المثل مثال تا داره تو متن میبینیم که ما چند تارم میگیم که ضرب المثل نیست به کار میگه من امثال العرب قبل رما تم لعول کناه جمع انجنه کنانه است کنانه یعنی تیردان تیردان یه چیزی مثل جعبه درست میکنم پشت کمرشون اونهایی که تیر و کمان داشتن میبستن توش تیر میریختن من موقع تیر اندازی که می‌شد دستشونو می‌بردن، تیر درمیابادن میذاشتن توی کمان و رها میکرد این در واقع خشابشون و کنانه جمعش میشه کنائه روی ما مستر راما یورامی یعنی به همگیگه تیر انداختن. یه مرحله از جنگ رو اندازها روبروی هم میستادن یه مرحله از جنگ رو اندازها روبروی هم میستادن خب یه مرحله از جنگ تیرانداز ها روی هم میستادن و به هم تیراندازی میکن این ضرب المثل میگه قبل از اینکه که مرحله تیراندازی دوتا لشکر بشه باید تیردان رو پر کنید قبل از اینکه مرحله قبل از اینکه مرحله تیراندازی به و همدیگه باشه تیردانها رو پر کنید. خب عزیز من سوال داری اشکال نداره ولی خب فارسی می نیسید. تشکیلات ما همین رو برعکس نشون میده و غیره در بهدا مشکل نداره حالا سوال رو هم جواب خواهیم داد هیچ بحثی نیست. استرااب نداشتو باش بعد این رو میخوام خدمت رو بکنم کنم که میگه قبل رما یعنی قبل از اینکه مرحله ای برسه که دوتا لشکر بخوان روی روی هم وایسن و تیراندازی کنم یعنی قبل از مسابقه به تیراندازی یا قبل از مبارزه به تیراندازی باید تیردانها رو پر کرد باید تیردان ها رو پک درست شد. میگن تو فارسی مثلا قبل از قبل از قبل از اینکه مرحله این برسه که شما بیفتید تو چاله باید فکر واقعه رو بکنید میگن علاج واقعه رو باید قبل از وقوع کرد خب این معادله همونه علاج واقعه رو حلاج واقعه رو قبل از وقوع کرد علاج واقعه رو قبل از وقوع کرد خب این معادله اونه. قبل الرما تملا الكنائن تملا یعنی پر میشه یعنی نمیشه شما تو میدون جنگ اینو اون موقع اول که گفتن درست شد اون اول که این مبحث رو گفتن یه نفری رفته بوده تو مرحله تیراندازی جنگ بخواسته هم تیر بندازه هم تیردانو رو پر کنه خب نمیشده باید خشاها پر کنی بری بیجن درست شد میگه که قبل اللی ما الكنائن قبل از اینکه جنگ شروع بشه باید تیردانها رو پر کرد علاج واقعه رو قبل از وقوع باید خب این ضرب المثل رو کجا به کار ببریم؟ یکی گفته مثلا جایی که یه نفر از تاریکی میترسه یا این نمیشه که ولی یه نفر بگه مثلا یه کسی با قول خودمون میخواد امتحان و کنکور بده نیومده خودشو آماده کنه میخواد اون صبحی که میخواد بره ساعت هشت امتحان و کنکور بده میخواد از ساعت هفت و هشت بخونه و کنکور میگه میشه میشه که بابا یا یه نفری میخواد خونه بسازه خب میخواد خونه بسازه اما پول درست حسابی نداره این میاد خب میخواد شروع به خونه سازی کنه پیشو میکنه یه دوتا ستونم میکشه پولش تموم میشه میگم چرا نمیسازی میگه خود دستم خالیه ندارم میگیم بابا قبل رما تم لا الکناه یعنی تو که پول نداشتی شروع کردی به خونه ساختن الان وسط کار موندی مثل کسی هستی که اومده تو میدون جنگ ولی خشا خودشو خود شو پر الان نگاه کنید میگه ازاگل تهو لمن یوریدو میگه زمانی که شما اینو بگید به کسی که قصد داره بناه بیتن مثلا میخواد خانه بسازه قبل انیتوافر لده ای المال قبل از اینکه مال پیش او جمع شده باشه قبل از اینکه مشتش پر باشه قبل از اینکه مشتش پر باشه بگو آمده و داره میخواد چنین کاری رو بکنه خب این راحت استاری تمثیلیه بود در ذرب المثل قبل الما تملع الجناد نگاه کنید ارما ار یعنی رمی و سهام یعنی تیراندازی کردن به آن کنایه که گفتم جمع کنانه و هيا واء اسهام باا یعنی ظرف ظرف تیر صدای یعنی ظرفی که شما به قول خودمون تیر توش می و خشاب که پشت مینداختن جعبه اون اونو میگن گن کنال. بعدی رو نگاه کنید سواله است انت ترقوم و علل ما فلانی تو داری روی آب می نویسی تو داری روی آب می نویسی. یعنی چی تو داری روی آب می نویسی. یه نفری آمده یه نفری آمده نشسته لب ی حض هی مینویسه خوب این انگشتش که رو آب می نویسه تا میره انور پاک میشه نمی نمیمونه یه کتابم بنویسه به, به درد نمیخوره این معادله چیه؟ معادله اینه که آب در حاغن می میکوبه همون چیزی که گفتی خب این ضرب المسال باید برای کی به کار ببریم کسی که داره بر آب مینویسه برای کسی که یه کار پوچی داره انجام میده که به نتیجه ای رسید نمیرسه هیئت مد اونه انظر ترغمو یعنی تکتبو علل مائ اذا قلتهو زمانی که اینو شما بگید لمن یلهو یلهو یعنی یسر به کسی که اصرار میکنه فی شأن یعنی فی عمل در کاری داره اصرار میکنه لا یمکنر حصول و منحو علاقایت قایت یعنی هدف که نمیتونه از اون کار به هدفی برسه کار ای داره میکنه که هدف مورد نظر رو اصلا بهش نخواهد رسید. اصلا بهش نخواهد بسید. حالا نگاه کنید این دوتایی که حل کرده نموزش شما دوتا رو فهمیدید قبل گفتیم مثلا برای کسی که خونه داری میسازه پول نداره بگیم یا انت ترقم و علال ماه تو رو آب مینویسی به کسی بگیم که کاری رو هی اصرار درش میکنه که امکان رسیدن به سود برای اون ممکن نیست این دوتا رو چی میگه؟ نگاه کنید میگه شب بهت حال حال، حیعت، صورت شب بهت حال و من یورید تشبیه شده حال کسی که قصد دارد بناء بیتن ساختن خانه ای رو قبل اعداد یعنی آماده کردن اعاده یعنی آماده کرد قبل از آماده کردن مال برای اون خانه قبل از اینکه دستش پر باشه و مال و منالی داشته باشه برای ساختن خانه اومده شروع کرده به ساختن خوب اینو حالش رو تصویر میکنیم به حال من یرید القتال به حال کسی که قصد داشته به جنگه ولی سفی فی نانتی حیثه هامون و حالا که توی تیردانش تیر نداشته میخواسته هم تو میدون جنگ تیردان رو پر کنه هم به جنگه. خب نمیشه اینم هم میخواسته هم وسط کار بره پول پیدا کنه و به قول خودمون این کار کنه هم خونه بسازه خب نمیشه و قبلش این کار میشه جامعه چیه؟ به جامعه انه کلن من هما یتهد جلول یو و ادت یعنی قبل به جامعه اینکه که هر دوی اینها عجله میکنند تو کار قبل از اینکه براش وسایلش رو آماده کرده باشن خب هردوی اینها عجله میکنن تو کار قبل از اینکه وسیلهشو جور کرده باشن. خب اون یکی که تو میدون جنگ تیرش تیردانش خالیه خشابش خالیه بخواد به جنگ خیلی واضحه دیگه این آوردیم تشویه به او کردیم حیعتشو جامع قبل... قبل ان نک من حمایت عجل امر قبل این ی دلا برده صبح استایی از ترکیب و دا ال حال مشببه بهی ترکیبی که دلالت در حال مشب به هم به میکنه لل مشببه ال سبیل استارت تسییلیتول غرین تو حیت و... که گفت همیشه قرینه چیه خاگی است همیشه قرینه خالی است خوب من هم عزیزان دلم با این, این کتاب از اون روز اولی که اومده توی ایران و توی موقعیت خودش این تدریسش سالهای سال با ما بوده و با قول خودمون تدریس کرد دیگه به حدی رسیده که اگر دوستان ما یک مقدار توجه خودشون رو به حرف ما داشته، بشه اینقدر من تکرار میکنم اینقدر مطالب رو خواهم گفت که جای سؤالی هم نباشد یه مقدار تحمل کنیم دست خیلی ساده است مقصوم ما میدونیم از کجا شروع کنیم چی دو جلو بگیم چی و عقب, عقب بگیم چی کار بکنیم شما هم که الحمدلله بسیار بسیار خلاصه نسل امروز باهوشید مثل جوانی های ما نیست خب دوبامی رو ببینید چی میگه میگه شب به حال و منی و له و فله علا عمره مستحیل تشويه شده حال کسی که اصرار میکنه در رسیدن به کاری که محاله اصرار میکنه تو یه کاری که نمیشه خب به حال من یرق و علما اصرار میکنه به حال کسی که کسی از اصرار میکنه به یه کاری که نمیشه محاله میگه ده بار میگه من شرکت کردم تو گم گفت، گفت بیخود کردی در واژه گیرت جای قبول نشدی. ولش کن دیگه. تو داره آب تو آبام میکنی مغزتو رو نمیکشه ول کن. درست شو. میگه شب به حال و من یله و یله یعنی یسر رو فل حصول برای به دست آوردن کاری که مستحیل است به حال من یرق و مال به حال کسی که داره رو آب می‌ریزه. جامعه چی؟ به جامعه هند و کلن یعمل و عملان غیر مصمره هر دو دارن کاری رو میکنن که سودی توش نیست عمل غیر مثمر دارن انجام میدن روش کاری که سودی توش نیست انجام میدن سنبه اصطایی رد ترکیب و دال علمشبه به للمشبه علی علا سبیل لستهارت و والغرینت و خب بریم تو مثال های کتاب مثالای کتاب دوتای اولش زربال مسل نیست اما سه ومی زربال مسل سه ومی چون الان براتون زربال مسل خوندم سه رو توضیح میدم میخونم ببینیم در قدیم قبایل با همدیگه افرادشون درگیر میشدن یعنی مثلا یه قبیله یه کسی میرفت یه قبیله دیگری رو کسی رو میکشت وقتی میرفت کسی از اون قبیله رو می افراد اون قبیله دست به کار می برای انتقام دست به کار می برای انتقام گرفتن. بعد یه ادنا بودند که اینها ها ریش سفیده این دوتا قبیله قبیله قاتل و قبیله مقتول رو می آوردن ای براشون سخنرانی می که انتقام کار بدی شما هم زدید کشتید یکی دیگر رو چی از توش در میاد بعد انتقام نگیره حالا یه غلطی فلانی کرده شما دیه بگیرید کارو تموم کنید هی hey, از این چیزها میگفتن تا اونها رو وادار کنن به اینکه دیه بگیرد و صلح بشه و هی hey, این نکشه اون بکشه و هی hey, خون خونریزی بشه درست شد؟ این کارو میکنن یه نفری یه کیر زده بود کشته بود و افرادی رو، این مال مورد اوله که حقیقت بوده. یه موردی، و این مورد این ضرب مثل اینه. از قبیله الف کسی از قبیله بر رو کشته بود. اده ای آدم های سلطلب و اصای این دوتا قبایل رو جمع کرده بودن جایی. و داشتن به اینها بگید نصیحت میکردن دو سخنرانی که اینها نرن انتقام بگیرند. همین وسط مسطح که داشتن صحبت میکردند و سخنرانی میکردند برای اینها یه دختر بچه اومد اسمش جهیزه بود یه دختر بچه اومد توی این محفل وارد شد بین این سخنرانهایی که داشتن سخنرانی میکردند و تلاش میکردند که سورت ایجاد کنند اومد و اینطور گفت گفت فلانی،, فلانی که کشته بود پیداش کردند و کشتند تا اینو گفت اینا داشتن چیکار میکردن اینا داشتن به قول خودمون سخنرانی میکردن چه چیزی نشه اون وقتی اومد اینو گفت چی گفت گفتش فلان کس که زده بود کسی رو که کشته بود پیداش کردن دو اون دختر بچه گفت خبر داد بعد اینهایی که داشتن برا صلح زحمت میکشیدن و اینهایی که نش بودن میشنیزدن و اینا همه دفتر دستکشونو جمع کردن یه نفر برگشت گفتش قطعت جهیزت و قول کل خطیب جهیزه سخنرانی هر خطیبی رو قرد کرد دهن همه رو جهیزه بست آه درست شد آب پاکیری دست همه بعدا این ضرب المثل شد در جایی که یه عده نشستن مثلا فرض بفرمایی یه جایی هست فردا میگن مثلا فلان استاد نمیاد صبح بعد چاگرد دارن به قول خودمون با همدیگه مشورت میکنن که فردا صبح کجا بریم؟ یکی میگه بریم مثلا کتابخونه یکی میگه بریم پارک یکی میگه بریم سینما دارن با هم بحث و جدل میکنن چون فردا شنیدن که استاد نمیاد همینطور که دارن بحث و جدل میکنن برای اینکه فردا کجا برن نمیاد یه نفر میاد تو کلاس میگه بابا من آقا رو دیدم استاد رو گفت فردا میام تا میگه میام همه دهنا بسته رو میرن کلاس میکردیم قطعت جهیزت و قول کل خطیب جهیزه دهن همه رو بست اینجا ای وجود نداشت خطیبی وجود نداشت گفتیم چی؟ گفتیم همه شما که داشتید بحث میکردید سر یه موضوعی فلانی اومد یه حرفی گفت همه تون ماستارو کیسه کردید و رفتید حیعت شما مثل حیعت اون دختر بچه است که اومد و حرفی رو زد و همه کازگوزه رو جمع کردن مسئله. آب پاکی رو ریخ به دست همه خیال همه رو راحت کرد جهیزت رو، قطع جهیزت و قول کل خطیب اینو به چی میگیم؟ اینو لمن یعتی به الفصل به کسی میگیم که حرف آخر رو میزنه آب پاکی رو میرود به دست همه خیال عمر رو راحت میکنه درست شد؟ نگاه کنید توی مبحثی که توضیح داده میگه ول مثال مثال سوم مثل عربی یه ضرب المثل عربی است هو. اصلش این بوده که من توضیح دادم ان قوم اجتمعوا لتشاور والخطاب فصلح بین حیین قتل رجلون من اهده ما رجلا من الحیل آخر هی یعنی قبیله ضرب المثل است اصلش این بوده که قومی جمع شدند برای مشورت و سخنرانی این در خصوص صلح مشورت در خصوص صلح سخنرانی در خصوص صلح بین دو قبیله دو قبیله که کشته بود یا آقای از یکی از این دوتا آقای دیگری دو از قبیله دیگه بین دو قبیله که یه آقای از این قبیله آقای از اون قبیله دیگر رو کشته و امم هم لکثالیک و این قومی که اجتماع کرده بودند بودن لکزالک همینطوری بودند یعنی همینطوری در حال سخنرانی و در حال مشورت و لکزالک یعنی این لکزالک اضا به جاریت یعنی فعیظا به این اضا میگه اضای فجاری اینا همینطور که در حال سخنرانی و مشورت بودن فعیظا به جاریت بابا اضاید است یعنی فعیظا جاریت جاری این دختر بچه پس ناگاه دختر وچهی تدعا جهیزته تدعا تو یعنی توسم ما دو که باشه یعنی توسم پس ناگاه دختر وچهی که نامیده میشد جهیزه اقبلت آمد اقبلت فا انبعت هم تا رسید به اینها خبر داد ان اولیاء المقتول اینکه که اولیاء ای اون کسی که کشته شده بود زفر رو به قاتل قاتل رو پیدا کردند بهش زفر یافتند غلبه کردند بر قاتل و بتالو از کشتنش اینو که گفت همه کاسگوها رو جمع کرده اونجا یه نفر برگشت گفتش و وال منهم یکی از اون افلادی که تو اونجا بود که داشت سخنرانی میکرد و اینو گفت قطع از جهیزت و قول نکنه گفت جهیزه این دختر بچه که اسمش جهیزه است دهن عمرو بست و حقیقتاً گفت اونجا دهن همه رو بست اینجا حقیقت گفت ولی ما هر مورد دیگه که مشابه این باشه به کار ببریم بنابرای تشبیه و به قرینه حالیه میشه ساره تمثیلیه در زرگل بسر و هوه ترکیب بود و این یک است که یو تماس بهی فی کل موتنه که مثال زده میشه به آن در هر جایی که یو تافیهه در قول الفصل در هر جایی که اونجا ما کلامی رو بیاریم که دلالت بر قول فصل کنه یا اتافیه در هر جایی که آورده بشه در اونجا قول فصل یعنی حرف آخر یکی پیداش حرف آخرو بزنه دیگه هیچ کسی با قول خودمون حرف نه مثل یه موردی هست همه دارن با هم مشورت میکنن این بشه اون بشه اون بشه یهو یه کسی میاد و یه حرفی میزنه همه میبینن که دیگه تمام شد جایی برای صحبت نیست این هر با آخر رو زدن تشبیر میشه به این مطلب. خب خوب این مال زربول مسئله اما نگاه کنید مثال اول مثال اول زربول مثل نیست مثلا الان شما نگاه کنید فرض کنید تلویزیون تلویزیون جلو شماست برینه حالیه است دیگه دارید میبینید میبینید صفحه تلویزیون نشون میده یه رزمنده ای مثلا رزمنده ای که به قول خودمون تو لبنان هست و رزمنده این از منزل خودش اومد بیرون دارید میبینید که دارید تصویر تو تلویزیون ببینید یه رزمنده ای در خانه اومد بیرون اصله روی کولش با خانوادش خداحافظی کرد راه افتاد به میدان جنگ رفت به میدان جنگ یه مدت جنگید حسابی با قول خودمون شجاعت به داد. دشمنان رو به درک واصل کرد. بعد صحیح و سالم برگشت آمد. خوشحال و خندان. رسید در خونشون در زد. در و باز کردن رفتون. این رو دارید میبینید. این حیعت مشبهه. دارید میبینیدش. قرینه حالی است بلی صدایی که می‌شنوید، صدایی که دارید میشنوید اینه. نیگه آد از سیف و الاخرابه. شمشیر آخته شمشیر بررا شمشیر بردان آخته به قلاف خود باز کشت و حلن لیسو و جای گزین شد جای گرفت شیر جیان شیر درنده جای گرفت منی قابه قاب یعنی جنگل منی یعنی بلند در بلندای جنگل خودش جای گرفت در خانه خودش در بلندای جنگل جای گرفت دارید میشنوید شمشیر به غلاف خود بازگشت یعنی بعد از کارزار و غیره بعد از شکست دشمن شمشیر به غلاف برگشت و میشنوید که شیرژیان بعد از شکار و سیر شدن به لانه خود برگشت هیچ کسی نمیاد بگه بابا این صداش با تصویرش جور تصویرش داره میگه رزمنده رفته جنگ کرده و اومده دوباره خونش این میگه شمشیر داره برمیگرده به غلاف شیر داره برمیگرده تو دونه همتون میفهمیدین اون هیئت مشبهی که دارید میبینید به غرینه حالیه تشویر شده به هیئت شمشیری که از خلاف در اومده رفته جنگیده حسابی کارزار کرده بعد از اینکه پیروز شده میذارنش تو قلاف و مثل شیری بوده که از لانه زده بیرون شکار کرده سیر شده با شکم سیر داره برمیگرده به لانش همه این تشبیه میتونه اینجا دوتا استعاره هست یکی استعاره تمثیلیه در مورد شمشیر که به برمیگرده و یکیم استعاره تمثیلیه در مورد شیر که برمیگرده به لانش اینا دوتا ضرب المثال هم نیست درست شد؟ نگاه کنید پایین میگه هینما آده ا موقعی که یک شخص کوشا برمیگرده به وطنش لم یا ادسایفون حقیقی یا نلا شمشیری نیست که شمشیر واقعی نیست که برگرده به غلاب و لم یا حقیقی یا نلا عرینه و یک اصد واقعی شیر واقعی نیست که برگرده به لانش عرین یعنی لانه و ازم کل ترکیب منهازین این لم یا سملفی حقیقته پس تیش از اینها بر نگشته در معنای خودش به کار برشون اصلا شیر و شمشیری در کار نیست. فیکور استعمال او فی عودت الرجل العامل الى بلده مجاز پس استعمال این کلام در بازگشت یک نفر کوشا به سوی خانه خودش ها شهر خودش و خانه خودش مجاز مجازه بل تو حالیتون بر حالی این است. فمل علاقت بین الحالین یا ترا یعنی یا من ترا ای کسی که داری اینو میبینی علاقه بین این دوتا چیه؟ کدوم دوتا؟ این یک حال رجوع الی وطنه حال برگشتن یک انسان قریب یعنی رزمنده که رفته در غربت جنگیده و داره بر میگرده به وطنش و حال رجوع سیف الاغرابه عل و قدم مشابهد علا علاقه تو علا فا این نه حال رجل اللذی نزهن الاوتان یعنی باوده با زیرا حال کسی که دور شده از وطن خودش رفته به جنگ آملا مجدن فل امور کوشا بوده و جدیت در کارها داشته مازی در امور بوده امور رو در هم کوبیده و برگشته ثم رو فان فا حال الرجل الازی نزهن عن اوتان عاملا مجدن مازی انفل امور ثم رجوعه الى وطنه دل شد بعد برگشته به وطنش بعد از تونل کد بعد از زحمت زیاد این تش به حال سیف شبیه هست به حال شمشیری که استل للهرب والجناد که کشیده شده از غلاف استل یعنی کشیده شده کشیده شده از غلاف برای جنگ و مبارزه جلاد یعنی مبارزه جالدای و یعنی بارز و مبارزه مبارزه کشیده شده از قلاف برای جنگ و مبارزه حتی ازا زفر به نصر عاد علاقه میده جوری که وقتی پیروزی حاصل میشه شمشیرو غلاف میکنه و مثل ذالکه یقال فی هلل لیسو منی اقامه قابه مثل همین در مورد اون مثال دوم گفتن. شیر وقتی میره بیرون شکارشو میکنه شکمش سیر میشه برمیگرده به لانه خودش حال به حال تشبیه شده روشو. این مثال اول گفته میشه مثال اول به کیل مجاهدهن الی بعد از سفر طویل یه مجاهدی که برگشته به خانه خودش وطن خودش بعد از یک سفر طولانی و جنگ و کارزار خب یا این سر مثال, مثال دوم مثال دوم نگاه کنید مثال دوم یه نفری توی دربار سیف و دوله کنید یه نفری تو دربار سیف و دوله متنبی که شاعر خیلی خیلی بزرگیه کسی رو دست نداره در دربار متنبی شعری در دربار دوله متنبی شعری خونده خیلی شعرش درجه یک بوده اما یه نفر آدم کمسواد حسود توی اونجا برگشته شعر متنبی رو نپسندیده بوده چه شعری بودین خوند؟ با قول خودمون شعروور بودین گفت شعر نبودی اشکال داشت این اشکال این اشکال بسه پس هیئت مشبه چیه؟ در نظر بگیرید سیف و دوله نشسته متنبی آمده شاعر بزرگ خب مثل سعدی مثلا این بر جایگاه داره اومده در مقابل سیف و دوله یه شعر خیلی قشنگی خونده بعد یه دونه خورده شیشه که اونجا بوده که فهم و ثواد درست حسابی نداشته و حسادت میکرده اونجا برگش بوده این شعره این خوند و این شعر بود شعر بود متنبی برگشته به این آدم جواب میده میگه اینو میگه نگاه کنید و من یک زافم مرن مریضن و هر کسی که باشد صاحب دهانی تلخ و مریض کسی که دهان تلخ و مریض داره دیدید مثلا کسی تب میکنه دهانش تلخه بدنشم مریضه ها این آدمی که دهانش تلخ است و دهانش مریزه، درست شد؟ یعنی تب داره یجد جواب منه یجد مرا بهی علما از الظلالا این شما این آب زلال هر آب زلالی حتی آب زمزم بهش میریزه تو لیوان میدو میخوره این میخوری این آبیه آب تو دهنم تلخ انگار دارم زهر مار میخوره. میگه یجد مرن بهی یابد در دهان خودش آب زلال رو تلخ آب زلال رو در دهان خودش تلخ میاد. میگه کسی که تب داره دهانش تلخ است، این اگه آب زمزم هم بهش بدی بخوره آب زمزم رو تلخ است اینو به کی گفته به اون آدم پس منظورش چیه منظورش اینه که ببین تو که عقلت نمیرسه فهم و شعورت به شعر نمیرسه کمبود داری تو ناقصی مریضی شعر خوب درجه یک متنبیام بهات داده میشه تو شعر متنبی رو نمیفهمی اونو شعر رو ول حساب میکنی حال تو مثل حال کسیس که تب داره و مریضه کشمی کرد به یه حال حسی حال کسی که تب داره و مریضه و این آدم اگر بیای آب زمزمم بهش بدی که بهترین آب بریزه تو دهنش بخوره میگه اه چقدر تلخه مثل زرمار حیعت مشبه رو حذف کرده حیعت مشبه آن با به جاش بکنه همه اونهایی هم که تو اون دربار بودن وقتی اینو شنیدن فهمیدن که اینجا تب و مریض و, و آب زلال و اینها نیست بلکه هیئت اون رو که اشکال به شعر عالی متنبی کرده تشویق کرده به حال کسی که مریضه و آب زلال رو در دهان خودش تلخص اون این مجاز به کار رفته اینو به چی میگیم لمن لم یرزق به کسی که روزی نشده از ذوقه روزی نشده او زوق لفهم فهم شعر راه این گفته شده به کسی که خدا به او فهم شعر زیبا رو عطا نکرده عقلش به شعر زیبا نمی‌کشد نگاه کنید میگه بالمثال و سا... بالمثال و سانیح اون رو و متنبی. بیت المتنبی بیت المتنبی يدل وضع او علی حقیقی وضع حقیقیش اون معنای ظاهریش دلالت بر میکنه الا ان المریض الذي يصاب بمرارته فی فمه که باید بگه فی فم فی. وقتی که اضافه بشه جسم عسا 500 میشه فیفیه ولی گفته فیفمه میگه و بیت متنبی دلالت میکنه تعلیفش وضعش وضع واقعیش در دل واقعیش دلالت میکنه بر اینکه مریضی که یصاب به مرارت دوچار است به تلخی در دهان اذا شره و المل عزم زمانی که بنوشد آب گورا، گوارا بابارا و اینو تلف احساس. بود. حالا اگر مثلا متنبی پزشک بود داشت توی کلاس پزشکی درس می داد می گفت دانشجویان عزیز. کسی که دهانش تلخه تب داره مریزه این دهانش باعث میشه که آب زلال هم بهش بدید بخوره تلخ احساس شد چیزی نبود معنای واقعیش اینه اما ولی که نهو لم یستعمله فی هازل معنا ولی او اینو توی این معنا به کار نبرده بل استعملهو فی من یعیبون شعرهو بلکه به کار برده در مورد کسانی که شعر او رو عیب میکردن اونم لعیبن فی زوغ هم از شعریه اونم به خاطر عیبی که در ذوق شعریشون داشتن خودشون ناقص بودن و زعفن فی ادراک هم العدبیه به خاطر عیبی که در زوغ شعریشون داشتن و زعفی که در ادراک ادبیشون داشتن فقازت ترکیب مجاز پس این ترکیب مجازه در حال خودش به کار نرفته قرینه تو ها حالیتون قرینه خالی است و علاقه تو و علاقه و المشبه. مشبه ها چیه؟ حال المولئین مولاین یعنی مشتاقین حال اون کسانی که مشتاق بودن به زمهی به مذمت کردن متنبی حال اونایی که حسادت میکردن فهم و شعور درست حسابی نداشتن در شعر و مشتاق بودن که متنبی رو مذمت کنند حال اون آدمهایی که المولعین حال و المشبه اونا حال المولعین به زمهی بل مشبه به حال المریض مشبه به حال مریض اللذی یجد و علماء از زلاله مر را به هم حال مریضی که یجد علماء از زلاله مر را آب زلال رو ترخ دو ده آل هیئت نسیم رو حیعت مشبه را کرده و هیئت مشبه به رو به جای اون گذاشته تشکیه تمثیلی رو کامل گفتم ببینید بحث استعاره به طور کامل تمام شد اگر شما نصیحت از من گوش میکنید که انشالله هم گوش میکنید چون به نفع خودتونه از امروز تا شنبه چند روز وقت یک این استعاره رو مطالعه کنید از اون اول تا الان بحث مجاز استعاره رو مطالعه کنید چرا؟ چون درس بعدی دیگه درس نیست بلاغت قتل زیبایی استعاره رو میخواد بیان کنه و نمونه های اون رو بیان بکنه یک دوره این اصفت به گذشته است یه مقدار اگر کار کنید اون رو درست شد اون مباحث استعاره رو این دوره کردنی که من برای شما خواهم خوند خیلی کمکتون میکنه یعنی دیگه حسابی مطلب رو یاد میگید این یک مبحث که انشالله این کارو میکنید که بحث استعاره کامل بشه تمام بشه و بتوانید در امورات خودتون ازش استفاده کنین بحث بعدی اصلا وارد مجاز مرسل میشی که علاقش غیر مشابهته مجاز مرسل بخونی و اصلا مجاز لقزی دیگه تمام میشه بعد وارد مجاز حقلی میشیم تقسیماتی که اول بحثمون کردیم الله که موفق و معییت باشید و نصیحت مارم گوش کنید و السلام علیکم و رحمت الله و برای